از دایرین از آخری و شد که روایاتی رو که حضرات اخباری ها در استقلال مطلبشون در عدن جهد زواقه کتاب اونها رو متعرض شدیم به طور تفسیر توی این مجموعه روایاتی که حالا خونده شد همین روایت اخیری این ما قبل اخیر ما را جهان قرآن بعد و بعد این ممکنه سال بحثایی ما به درد بخواه بقیه عبارت نه این دوایت ممکنه دروز من از که در قرآن خنزید و مطلق حتی لحمه خنزید نه همه شو لحمه اشتباه شده بله. دم مطلق در قرآن آمده حالا من علیکم دم و مقید هم آمده دمن مخصوحا یعنی اگر مثلا ظاهر حدیث را اخت کسی با حدیث بگه مثلا به اینکه اون آیه که مطلقه هم به بر برمقیل این ممکنه از طویل داره به جمعه قرآن و از بعد و این نیست خود حدیث سندن هم واضح نیست و این لحاظ هم که آیه مراد که آیات قرآنی رو با هم مقایست بکنیم این واضح نیست این حدیث اخیه بودن است بله و که بله. در قرآن بحث معروفی نام نسخ هست و ممکن است که مثلا این آیه شامل اون موارد هم بشه یعنی به عبارت اون اخرى در مواردی که مروط به فقهه یک آیه رو با آیه دیگه مقایسه کنن اون وقت نتیجه گیری بکنن این هم اکتمالا این عنوان میشه لیکن از سر مشکل نیست که نه سندن خیلی عمر واضحی داره و نه دلالتن کلی کنیه به خاطر این که تعبیر شده ماظره به رجلون ظاهراً مرا هر حرف فردی که بخواد این کار رو بکنه و طبعا فوقهای احل بیت همچه کار میبودن زرب قرآن بعضه و بعض بعد از وجود به احل بیت سامالله حالی مجمعی اون وقت هم از که به قرآن می شکن. پس این حدیث نه انتباقه به منح نفیه تمام احتمال داره شبهه داره اما انتباقه دقیق به منح نداره حدیث شماره 23 در تقسیم بندی صاحب وسائل ان علی ابن ابراهیم ان هارون مسلم ان مسعرف ابن سرقه ان عبی عبدالله علیه السلام حدیث مفصلی در موقع جلد پنج کافی آوردن این اصطلاحاً سابقه هم خیلی وقته نگفتن معروف است به سلاسیات کلینیه از این گایی تعدیر میپنم به سلاسیات کلینی که ایشون با سه واسطه از امام صادق میکنه کنه هم کلینی با پنج باسته آدتا کلینی و سه کلینی که سی سد با امام صادق که شده هشته یعنی اون ترمه سده سال دیگه حد متوسطه حالا 180 حساب و هم 6 طبیعتاً 5 اما داره در کتاب کلینی مواردی در این قبیل که اصطلاحاً سلاسیات به میشه به سه از امام صادق نرمه میکنه باییم به اینها اسناد اصناب میگفتن خباً قربه همیشه در اگر واقع شد وجود یک انسان کبیر و در وسط هست معمری هست و این معمری اینجا حارون مسلمه ایشون کتاب مسعدت ابن صدقه رو نقل کرده که علی ابن از ایشان گرفته خود مسعدت و سیقه واضحی نداره شواهدی برابطاحت از جمع کرده فی حدیث احتجاجی علا صوفیه لم و علیه به آیات من القرآن فلی ایسا و حضور اینا به بعضی از آیات همستو که حضار فرمود علکم علمون به ناسخ القرآن و منسوخیهی یه بار یه معرف کردم ناصف قرآن و منسوخ استلاحاً این نسخ استلاحی ما نیست در, در روایات گاهی منسوخ و نسخ به معنای آمخاصه این استلاح ما نیست استلاحی که الان یک آیه آیه دیگر برگاره و محکمهی و متشابهه اللبیفی مثلیی ول من ول و حلک من حلک منحادهی قالوا او بعضه او فعلاً او بعضه بيا بنفسه بيا بنفسه بيا فلا او فعلاً یا اما کلی او فعلاً و قال لخم منهاقنا او کیته بعضی از بر رو بلعین همهشو بلد می‌شینه. حسن نه دین این مشیر و کدال که رسول الله. ایل آنقال تبع اسم از و الناس من و و احادیث رسول الله کتاب این هم تعبیر بسیار زیبایی است که ایمان که حتی احادیث رسول الله باید مرتعید آیات کتاب بشید ورد کم یا حال جهالت کم ورد کم نظر که قریب القرآن تعبیر به قریب القرآن از اینجا خیلی عقیق قریب شد مراد اصطلاح لغوی متعارف ما نباشه از قریب از قرآن اواخر همین قرآن دوم و اوائل قرن سوم. ما کتاب در قریب القرآن و قریب الحدیث داریم اونجا اصطلاحا دوها تقریب مرادی اینجا مراد مفاهیم بیشتر مراده ملت تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و الامر و النا الا انقال دو انکو بخشبه علیکم نما لا علم لكم به و رد دل علم لا احله. تو جروب خدا به شما عزمی و تو ضرور اندالله اون اخباری ها بیشتر به سر حدیث تماسو کردن که ناسخ قرآن منسوخ با کی خب و اصولی ها به زید حدیث آین اصولی ها میگن تمام فرمود دم و انكم مشد علیكم من ملائک الملکون به و رد دور علم الا اهل امام علم به رشف کردیم گفتیم آیات مبارک رو به اهل بیت مراجعه میکنیم در جایی که نبود به ظاهر آیات تماسو بشیم و کونو پی طلب قرآن من منسوخه و محکمه من متشابهه و ما احلالله و فی من ما حره الى انقال ال آخر حدیث انصافا این حدیث هم نشون بیده اجمالاً اون نحوه تمسطی که علمای سنی ها به ظواهر آیات میکردن درست نیست این مقدار رو میشه فهم این انصاف به این مقدار قابل فهمه اما این که مثلا بگیم که بگیم مرال این است که مطلقا نمیشه به زواهر کتاب این رو نمیشه عزا. حدیث درگیه در شماره 24 ان محمد ابن یحیع ان احمد ابن محمد فو استادش, استاد استاد استادش مرحوم های پشری ان ادت من اصحاب ناصر رو عوض میکنست ان دوم ان سهل ابن زیاد جمعه. اشارت اینه که این حدیث من در چند نسخه از کتاب ابن محبوب دیدم ان ابن محبوب جعلی ابن صالح اونی که الان در کتاب کافی هست عن ابی عبيده این سند حدیث الان صحیحه یعنی الان سند مشکل نداره این سند حدیث اجله اخاوند درشوا سفه صحیحه و بد لحاظ تاریخی هم خیلی واضحه کتاب ابن محبوبه یک از کتاب جمیله ابن صالح گرفته و شرح دیگه داره که من نمیخوام الان توضیحش ار لیکن من ارز کردم اده زیادی از روایات که به حضرت زهار صحیح هم هستن هیچ مشکل خاصی ندارم مرهوم شیخ کلینی در کافی درگاه یک در بابی نام نادر یا نوادر میاره و اده از روایات که به حضرت هم صحیح هیچ مشکلی نداره به تو کتاب روزه کافی آورده این حدیث از اینجا به بعد این سه حدیث همه از روزه کافی هم. خود انتخاب و عنوان روزه یعنی باهوشان شبیه اینه که ایشان یک نوع تأملی درو داشته حالا اینا واقعا ما نمی‌دونیم یعنی الان در حسب علم ما احتمالاً بیشتر مشکل محلی و مضمونی داشته مارکولینی نه مثزلی بلاظمه مسئله مشکل نه من چون نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم و الا به لحاظ تاریخ سند روایت روشنی از ابی افساده در این نسخه میآه اون اگر آن حساب این چیزها این کامپیوتر هم روشون باشه به نظرم در این مطقه چاپی توضیح داده باشه که علی آبیده اینجا افتاده علایه حالا این رو هم ما سر در نمیادیم این که از اون مواردی که ما خیلی اطلاع پیدا نمی کنیم که چرا کلیمی ادیه از روایات رو برخورده به اصطلاح تقریبا میشه گفت منفی باش کرده و حسن روزار شده از سعیت مشکل خالص عجله از حال اون توش هستن مثل ابن محبوب و اینها و نمیفرموا حالا علتش رو در این که کلی کلینی انصافا نه حالا تعبده و کلام نجاشی واقعا در حدیث فوق عاده از در فهم حدیث اختیار حدیث و به جا آوردن حدیث هم فقیه هم محدثه رجالی بزرگی حدیث شناس بزرگی است نجاشی میگه او سوال ناس الف حدیث و اثبت اون فی اونج که من یادم مازی حافظه من خیلیام که اعتبار نداره استغراق نکردن در کل کافی در کل نجاشی تزیر فقط برای کلینی به فروازه او ثواب ناس فلحدیث اسات مش درسته انسان و, درست و اینها نشون میده عظمت مقام علمی ایشون رو که سند بهتر حسبه درست توی رو روزه آورده صادقانه اشاره کنه بعضیام روزه رو به کس دیگه انسان ثابت نیست روزه مال کلینیه لیکن زالن روایات متفرقه رو ابرده تو تعبیر خودشان روزه گذاشته بله سال فعا جعفر ان قول الله عز وجل علیف قول و ترون فی ادن الاس و قال ان لا یعلم الا الله و راسقون فلعلم من آل محمد سلامت الله, الله این نشون میده بر راسقون فلعلم اتفر بر الا الله که سابقه کرد. کرده الا ان قال الم اعقل ان لك تحویلا و تفسیرا و القران ناسخ و منسوخ سابقا اشاره ای کردیم که فرق است بین تعبیر و تفسیر ما هم خلال بحث هاینده این سوال توزی میشه که الان راه واسه بکنیم خیلی وقت اینطور موضوعی شده اینجا که فرق باشه بین ان لهالا تعبیرا و تفسیرا حدیث شماره 525 هن اعدادی من اصحاب از آن احمدی محمد محمدی ابن خالد برghi، آن عبی برghi پدر، آن محمد ابن سنا، آخرین حدیث با برghi پدر در قوم بوده، گیه به کوفه. شان خود محمد ابن خالد برghi پدر در کوفه بوده، آن محمد ابن سنا، آن زید شحاب، محمدی ابن خاب محل کلام اشغال برای شورده، آخرین محمدی ابن سنا. هم میراث اختصاصی خط قولو بنام هم میراث عمومی خط اعتدال از هر دو خط نامی از خط اعتدال به اصطلاح و مشکل محمد بن سنان چند بار درفه این نیست که فرض نشه جزء خلاصه یا مثلا جزء کذابین گفته شده جزء کذابین مراد این نیست که زیبی که در ذهن شما میاد از ایشون نقل کردم که ایشون گفته این کتوبی که من براتون نقل کردن به نحو وجاده است یعنی مثلا این ان زید شه ها نه باید میگو ان زید شه ها باید میگو وجه تو پی کسا رو زید این اصطلاح در اون زمان که اگر شما کلمه ان رو به کاروردی یا ان به اصطلاح این مساوره با اقتصاده مشکوره بین اهل سنت هم همینه شما بین محدثین اهل سنت در کتب حدیث نگاه بکنید چیزی حدود نورد نورد پنیز انعنه رو مساویه با اتصال میدونن اتصال این فرام کمشون گفتن نه انعنه اهم از اتصاله این مبنا یعنی مبنای محمد اشتفاه نشنه که ایشون کذب تزد... تو ذهن نارمه که ایسا کذب این مبنا که اگر شما وجاده بود خب اینا مبنای اتصالی بود فسا محمد روزان تو ده پنی دستن محمد روزان روزان روزان روزان ر یا قرعه ساز علازی گفت انزه انا به نظر ایشان عمل اتصال میشه مشکل نداره مبنای انسی مشکل خاصی نداره خب یک مبناش هست الان 5 درصد برام اومد این مبنا رو دارم مشکل خاصی نیست اما متعارض نیست پس فرض کنید در مبانی کوزوی نبوده که اگر به نحوه وجاده باشه به صیغه ان به کار بذاره ان زید شخان بعد میگفت وجاده از خود محمد انسان اسلام شده مشکل محمد انسان اینه داخل لذا ممکن که در روایاتش در متنش شرابی باشه کمی زیادی بله دخل فتاده علی اوجی جعفر فقال بلا او آستان چرا ایشون خب تو صاوزه روزه مگر بله چرا؟ چرا از اونا رو یا قبول داشته در جای دیگه هم بیده؟ حالا پرس این کتاب زید شهام رو از راه دیگه هم داشته پرس اون در حدیث شناسی برمو کنی بحث نیست مشکل من این ریانات چرای کتاب روزه برده مشکل مضمونی داشته و مشکل سندی الان این رو ما نمیدون داخلت قاضی اسبن جوامه علی ابی جعفر تقاضی ها گفت قاضی انت فرد اهل بحث قالوا حاکای از امور پس کلم چرا ان بناورن این جو البته به عنوان طبیعی اما قاضی اصولاً در معارف دینی ما جایگاه خیلی بالایی در تفسیر داره خوب دقت بکن الان در کتاب ترسا تا که مجمول برایان علما ان شاء الله تو کتبیان شیخ توسی. یک کتب شیعه و سنی آراء قطعه در تفسیر زیاد نه میشه حالا اینجا تعدیلی به تعدیل کرده بله قول قالها کدایت اون، فقال ابو جفل بلغم یعنی نکه تو رو برا. این درسته این الان عملا است. و از در ذیل آیه الله و راسخون فلعی در کتب اهل سنت دیدم ابن عباس روکه انمون راسخین فلعی به نظر از قطعه هم دارن این مزمون رو یا از یا از قریه ی گره از صابئین است فقال و قصاده نه بله من تفسیر می کنم هر این ده فعل حسی مطلب درست فقال و ابو جعفر علیه السلام اینجا یک صد افساده نه از این مصح ما افساده شده از جلدی افتهام به بعد خیلی با عنایت چاپ نشده این چاپ مرهای رمانی این این از این چاپی که من دستم الان هست جلده هیجده همه چاپ مرموهای ربانی یک سطف افتاده اگر آن مقابلشون این چاپ دیگه هست فقاله او ابو جعفر فی این کنته یک سطف افتاده اون سطف که افتاده می کنم که قاله نزمهش تو این چاپ جد باشه به علم تو فسروه و ام به جهله قال الله به علم فقاله او ابو جعفر علیه السلام فی کنت تو فسروه و به علم فانت انزو انه از الوش خیلی خود پس از دارم سؤال بخونم که سؤال هم نمیدونم در این شاپ جهیر هست این یک سف نه اونجا هم افتاده هم فلمت داره هم فلمت داره پس معلوم میشه که بله معلوم میشه که از نسخه وسائل افتاده وی حکی یا قطاده این کنت انما فسرت, انما فسرت القرآن من تلقای نفسک فقط حلقت و احلقت و این کنت قد فسرت هم این رجاله این صاحب هر دو شرط در کلمات قصاده فقط حلکت و اهلک یه وی حکی ها قطاده اینما قرآن من خوت به به یک بحث کلامی که در حقایت دینی چه تفسیر چه فرد چه محاره کلن راه صحیف فقط اهل بیشه این نیتار کنفیکم و سغلی الله به این اینما یعرف قرآن من خوت به به شنایه به رسول الله و امیر المؤمن و احله به انسان الله مطلبش درسته از خدم حدیث به لحاظه به اصطلاح علمی میشه گفت اعتبره بحث مشکلی هم نداره حالا محمد علیه مشکل خاص خودشون حدیث درست هم هست نهای قرآن ربشید بحث کلامی اصولی ما نداره حدیث شماره 26 در اینجا داره من محمد ابن یحیا این که در کتاب ماست اونجا همین ساره؟ شده. بیشت و شیش اینجا داره من محمد ابن یحیا اون احمد ابن محمد اونجا همین چیزی کی بیهاشه نداره؟ این من سابقا ارز کردم بحث لطیفیس این بحث این بحث لطیفیس یا که اینجا بید بحث رجالیه مکن خب اینجا فقط من به اندازه که آشنا بشین از کردم سابقا در کتاب کافی گاهی اینجوری میگه مثلا ابتدا من اصحاب ابن احمد محمد احمد بود باز بعدش بلافاصله میگه احمد بن محمد بلافاصله بلا یا بعد بعضی درش احمد بن محمد. این رسم میشه در کافی اصطلاحا هم میگن تعلیق یا بلا حالا تعلیق بلا حالا من کار به کار فن میشه یعنی به اصطلاح این است که این حدیث اکثر در حدیث ثابت این متعارفه مثلا کولینی میگه علیه ابراهیم انه عبی انه حماد انه حریز انه کتا دلاخفاسده بعدیش میگه حریز این که حریز میگه این که مرموم کولینی از حریز نه حرید. این تعلیق به اصطلاح یعنی عطف بر سند سابقه و در کافی در ازده از مبارز هست که اول سنده احمد ابن محمده اول سنده مرحوم صاحب وسایل خیال کرده تعلیقه <تصفيق> توی یه کمی نکته پنیه توضیح میدن این آقا این که اون آقا مشخص نشده صاحب وسائل خیال کرده تعلیقه پس در وسایل خیلی موردن هست چند مورد دیگه هم توی هست توی کتاب کافی اول سند احمد بن محمده ایشون خیال کرده مثل احمد بن محمد در اینجا پرسن اشعریه یا برقیه کلینی از این دوتا مستقیم نقل نمی کنه مباشراتن نقل نمی کنه یه محمد ابن اضافه کرده این اضافات صاحب وسائله و من کرار نعرض کردن خوبی تحرین و وسائل در حاشه نیستن در مصدر اینجور نیست در مصدر احمد ابن محمد اول سنن. نه محمد ابن این اشتهاد صاحب وسائله صاحب, صاحب وسائل قدسه الله نفسه اشتحاد کرده مثلا اشتحاف کرده که این احمد احمد اشعریسی و احمد برگی روشن شد و این از اون عقل نمی کنه پسی محمد ابن احیاد ثابت شده <تصفح> یا عرض یکی در چند حدیث قبلی که که محمد ابن احیاد این رو ما جایی دیگم تو بودیم از اشتباهات سال و سال قدس سا. الله نفسه خوب بود ایشون همون که موجوده نرمی کردن من رو های برو حالا در این چاپ چنین چیزی آخر نمی‌دونم اما در اصل اول که زمان خودشون چاپ شد، آوی وجودی اعتقادشون این بود حتی همون جایی که تعلیحه شما همونی که در کافی هست بیارید شما مثلا احمد از محمد در کافی بیارید توی پرانتز یا به اصطلاح جوراییه که قروشیه قروشیه باز بکنید محمد نیهی یا ام این اشاره باشه به تعلیه درس نزنید به خود کتاب کافی به هم شکل موجودش به و به همون شکل موجودش نه رو بکنید اونی که نظر شماست تو پرانتز بگذاریم که به نظر ما اینطوره نه اینکه مثل صاحب هستایی مثل محمد ایندر یا اله احمد نوحمد اون محمد که نظر دیدن. تو پرانتز بگذاریم تو که بشه دید. دیدن دو خد دیدن دو تا دور بگذاریم حالا هر علامتی که استلاح بگنیم اصلا که اینی که از که در وسایل شده خیلی چون زیاد نیست اصولا روایات معلومه کلینی از احمد بن محمد مستقیما زیاد نیست در کافی لذا بعضی‌ها میگه ملتفت شده صاحب سال احمد بن محمد وردی اما بعضی‌ها مسی اینجا اشتباه کرده قدس الله و سره و لعنته الاهلها نمیشه ان محمد بن یحیی احمد این صحیحش اینه که محمد بن نیست خصوصا این احمد نه اشعری نه بردی اشتباه صاحب سالی بوده این احمد که در اینجا است، ابن عقده زیدی کوفی اصلا کسی دیگریه اشتباه گومیان بوم... کرده از کردن اصولا مرحوم کلینی قدس الله صفر دو تا استاد داره که ناس احمد اغده محمد استاد خودش هم یکی. یکیش اهل کوفه بوده که ابن اغده است. یکیش هم اهل بغداد بوده احمد اغده محمد عاصمی. ما اگر ابتدای ببین دو تا کم داره زیاد نداره ما با شواهد میفهمیم که مرادش زیدی است البته خود جناب آقای ابن عقبه هم عمر کلینیه که وفاتش 4 سال بعد از کلینیه 343 وفاتشه و یه شخصیت فوق العاده ایشون آقای اون گفت که قول فراموشه گفت ما ببینیم برای ما بحث می‌گن یک آثار عجيبه در حفظ ایشان هست 30000 حدیث رو با سند و متن حفظ کرده بود. این کتاب این با تکرارش نکرد واسش که خیلی تکرار داره 35 بار حدیث رو کرده. این چیزی ده برای کتاب نوشته و متناً کامل به ده در کتاب حفظ. زیدی مذهب ایشان. چون مرد بزرگواری بوده بین اهل سنت و شیعه و زیدی جایگاه بالایی داره. از علمای ما نوشتن مثلا متفقان علیفی به وصاوت بین عام مثلا این درست نیست سنی ها ایشون در وصاوت تحمل داره اشتباه نشه بله ایدهشون قبول دارن چون مخصوصا ایشون خیلی فوق العاده بود من یک یعنی تفسیر قرآن نوشی یک سر نوشته 70 بار شکرونه هیچ کس اون مسئله استنساخ بکنه هر چی واردش باشه اشاره بود در اونجا جمع کرد یک چیز عجیبی راجبه ابن اغده و آثار علمی ایشان نهاری شده پس این احمد بن محمد در اینجا این ابن عقده است. این اصلا برگی هم نیست اشعری هم نیست تو همچه توضیحات بیشتر رو با جدیگه بگم تهیم فقط به همین مقدار پس سند رو خوب بود ایشون از این حدیث هم بازم در روزه در روزه مرموم شهر کلی. احمد بن محمد که ابن اغده معروف زیدیست البته مرحوم نجاشی نا توصیق شدن بین ما توصیف شده اما بین عامه عده قبول نکردن زعیفون در حقه شده در کتاب ما نیم در حالا اونجا چیجوریه سعید ابن منظر محمد آمده یک نسخم سعید منظرب منظر محمد نمیدیم در این کافی های جدید سوشت شده این هم قلطه حالا این احتمال داره که اشتباه از نصای وسایل باشه نمیذار اونجش سوشال کرده جانت. همینطوره انصرد بن موحد احتمال داره در کافی مفعوم هم همینطور باشه سعد نمونه به هر حال اگر در کافی هم همینطور باشه که نقل کردن اون کافی مفعوم غلطه هر دوشون خلاصهن وسال نوست غلطه اینه غلط به این معنی که جابجا شده صحیحش این اینطور باشه احمد بن محمد بن سعی اون ان سعد غلطه بین احمد ابن محمد ابن سعید ان منظر ابن محمد سعیش این مرهوم کلگی ابن عقده از منظر ابن محمد نقل میکنه این منظر ابن محمد در نجاشی اسمش آمده در فهرس نجاشی اسمش هست گفته لهو کتابون سقتون من اصخابنا اینا خاندانه از خاندان به اصاب پادشکاتی یه هیره هستن نومانه منظر معروف در هیره اینا از اون خاندان هستن. از خاندان سلطنتی اونجا هستن و خانواده بودن در کوفه از هیره به کوفه آمدن و شیعه بودن مخلص بودن یکیشم این آغاست منظر ابن محمد ابن منظر ابن الاخردی برگش خودتون بخونید و لفت کتاب ظاهرن از همین کتاب ظاهرن رواتن شان مرحوم نجاشی که تاریخش به این کتاب نرمی می‌کنه میگه ابن عقده ان دراجش ایشون در تاریخش هم به کتاب ابن عقده اسمی می‌بره احتمالا نجاشی هم مرحوم هم این کتاب رو به نوسه ابن عقده پیشش بوده و این مطلبی که عرض کردم چون ابن عقده در کوفه در زمان خودش مشهور بود سنی و شیعه و زیدی ازش هر کدها این احادیث ابن عقده در سنی‌ها هم آمده مثلا در میزان الهیت داره منظر به محمد این عبیل و این و ادن عبده قالت دار قطعی اونو تضعیفش کردن منظر رولا که نجاشی توصیح کرده نمیشه اچه اینا خاندان شیعه هستن ناقلتالکوفه این ناقله که ایشون داره ناقلتالکوفه هست که ایشون در هیره بوده این خاندان این بیت که بیت به اصطلاح امروزی ما خاندان سلطنکی بودن نه این که خ سلاتین هیره بودن چون خود هیره یه تاریخ خاصی داره یه منطقه خاصی هیره با ندرد الان خودوی هی جهر که فاصله داره طبعا هیره با ندرد یکی حساب میشه از یکی از آن در از وقتی گفته میشه هیره هیره کشوک منطقه که خیلی به اصطلاح خودش از امت تاریخی داره خیلی نقاط مهم می راجه به هیره هست حالا بحثش اینجا نیست و. ان شاء الله یه وقت دیگه اینا به طرف کوفه آمدن این خاندان خاندان قابوسی رو معروفن ویک قابوسی چون نوه های نعمانه و از carry چون مجاعن که بغداد بود که الان بغدادش میگن این پایتخت ایران بود تیسفون بود شاهان ساسانی به این آی که مثلا در کوفه بودن یا در شهرهای اطراف بودن اشائق اجازه نمیدادن در اشعار عرب کسی رسمان به عنوان پادشاه باشه الا در دیره اصلا ملک عرب فقط در دیره بود که شاهان اساساً سلطان ساسانی بین هیره تا بغداد هم تا تیسفون حدود 180 کیلومتر فاصله در جنوب به اصطلاح بغداد ظاهر میشه به این معنی این منطقه خاص تاریخی است. از عجایب شه که یه مدتی حتی, حتی بعضی از جلسات بسیار مهمه جلسه سراسری کشیش های مسیحی در همین هیره بوده یک زمانی هم مثلا یهودی ها خیلی در قدرت پیدا کردن حالا یه شرحی داره که آدم شون جشینده من متعرض میشن ان پس این روایت رو اینجور دخونید احمد ابن محمد ابن سعید امن منظر ابن محمد این درست شیم عبی عبید این عرض کردم این ان عبید در کتاب سنی ها هم آمده ان جده این ان جده شاید زیادی باشه نمیدونیم حالا زیادی سنه ان محمد ابن حسین این محمد ابن حسین که در اینجا آمده ایشون محمد پسر حسین پسر امام سجابه این محمد ابن حسین نبی امام سجابه ان عدی یعنی حسین ان جدیه یعنی امام سجاب ان عبیه یعنی سیدر شهدات آمود این رواز خیلی مخلقه من مجبوره که تو توبیه شد بدم این خیلی سخته پس اینجور آمده احمد ابن محمد اولا اون محمد ابن این که غلط. ان احمد محمد سعیه این این هم زیاده احمد ابن محمد ان سعد ابن این هم غلطه احمد ابن محمد ابن سعید یعنی ابن عبده. این محمد به محمد این درسته در کتاب اهل سانت هم هست این جده این هم احتمالا درسته چون داریم جدهش من چون بارده بحث رجالی مخواه بشم تصالفا در اینجا مرهوم علامه رحمه الله در کتاب رجالش زیادی از رجالی ها و جامعه روها در اشتباهاتی واقع چون این مخواه بارده بحث رجالی بشم جا اینجا نیست ان محمد ابن حسین محمد ابن نواحی امام سجاده آن عبیه یعنی حسین، آن جدیه امام سجاده آن عبیه یعنی حضرت سید شهدا، آن Amirul Mu'mineen. این بیه سند و با علمی که پوسته و چی شوید. مشکلی جز از بسیار دوستیار و مشکلی است در کتاب. کافی که هم قدرت و قدرت داره و هم اخلاق داره. فی خطبتن لحظ علایهانه این یکی از موارد کتابهای منظر ابن محمد که نجاشی هم به او تصریح کرد این خطبه الان به لحاظ سند به استثناء خود منظرت ابن محمد که از سلمی خانواده محترمی بودن چون مرغوم نجاشی داره من بیت جلیل سقتون من اصحابنا من بیت جلی از هم اگر هم اون اگه مایل باشن بیووت شیعه رو چون یک بحثی از عنوان بیووت شیعه این رو مرحوم بهر العلوم داره من ما دیدم قبل از بهر العلوم این نظری هم مرحوم استاد نایع حکیمی سعی کردن در تحویل مقاله بیبی بکنن اگر رجال مرحوم بهر یا کامپیوتری داشتیم جلد اولشه که از امتیازات رجال مرحوم چون بساز فواید رجالی اتفاق رجال نیست یکی از امتیازات این کتاب ای مرحوم بهر العلوم یه شرعی باشه بیووت داره سن بیت به بیت, بیت فلان بیت, فلان. بیت همین نوامانه لمنذر هاوسی آل هاوسی اینا یه خانواده‌ای بودن در کوفه که مرحوم نجاشی هم من بیت جلیل. این جلیل این جلیلم احتمالاً جلیل اجتماعی نه الا جلیل در علم ممکن در اجتماعی ها. چون خاندان سلطنتی در نوهای نوامانه منظر بوده که از کردن در کل عراق و بعضی تا حجاز به شاهان ساسانی اجازه که کسی از عرب ها خودشون ملک بدونه الا این آقا ای در بود. ایشون ونان ملک و عرب به اصلاح از برده میشه قاله این علم القرآن لیس علم و ما غوه الا منغاق تهمه فعلم بالعلم جهله و بسر بیه امام به نظر این ملاشت نهجبر آقام آمده و سمعبی سممه سمم به اصلاح کریه بوشه و ادره که بیهی ما قدفار هم خیلی خوصه واقعا تنانه رنانه رشیغیز انصافن حتی انیو قال بدن نیستندش میشه قابل قبول سند قابل قبول ماشه میگم اول که آدم نگاه میکنه خیلی به هم بیفتن. اما با تحریلاتی که من از کن خدمتون میشه درستشی هم و هی و هی بیهی یا و سم عبیهی و هی بیهی یا هی یا بعد ازماد یا هویی اینجا هم بازی یک سطح افتاده دیدم کتاب شما داری یا نه و اصبت از اندالله از ذکروح الحسنات و مهابه سیعات و ادرک بالقرآن رزوان غزوانن من الله تبارک و فعلا خیلی توصیف زیبایی از امیر المؤمنی نسبت به قرآن خیلی زیبایت نصفه این, این قرآن با این عظمت فتل بود ذالک من اند اهلی و خاصته ف ان نور یستقابه خیلی زیبا هم خودقرآ رو توصیف میکنن هم اهل بیت رو سلام الله مجموعی ف ان نه نور و نورن به و, يقتدا ایجا ده بشه. و يقتدا راجب بیت. این که راجب زندگی علم به اونهاست و موت جر و مرگ نادانی که تغییر زیبای هم ایش وجر علم نظر میخوام. هم ایشل علم زندگی علم بهره بیته و موت جه و مرگ نادانی هم بهده به. هم ایشل علم و مووتجر و هم لبی و اینجا هلمه هم داره در کافی و حکمه هم داره حال مختلفون فيه. و هولدی یخبرو کم همولدین یخبرو کم حلم هم ان علمه هم و سمت هم ان منطبه هم و راهر هم ان باطنه هم لا یخالفون الحق در کافی دین داره ولا لا فی به انصافه خیلی متن زیبادیست این حدیثی به که در اینجا نقل کرده به احل بیت راجب قرآن و این مشکلی با ما نداره بعد مرحوم صاحب و صاحب می تقدمه بقید تقدم حدیث و عبیده این عبیده با این بخواییم عبیده نخونیم عبیده تو سلمانی از اصحاب امیر مومنیم زبطش با فتح اینه اما علی قال اتقالله ولا تفت و ناس به ما به اصطلاح به ما لا تعلمون آروف هما نسنعو به ما وبرنابهی فلمصحب قال یس الاندالكه علماء آل محمد صلوات الله و سلام علیه ببینید من یک نوکی رو از فیلم ما نکته ای ریختم هنوز زکس بکنی من در اول باب هایی تشی داشتم گفتم صحب و سال گفته اینجا من 80 تا حدیث آوردم الان فعلا شماره گذاری 82 تا شده احتمال داره این تقدم ها رو حساب نکرده چون یک دون سر حدا فقط حدیث ریان این حدیثو رو اگر بی این کتاب ما مخیل نگاه کنیم صفحه 13 حدیث ریان صفحه 28 بی این چاپی که من دارم ریان ابن سرد اینم هم شرح مفصلی بخار رایی این که جاش اینجا نیست رزا این آبایی ای که قال قال الله عزیز و جل ما آمن بی منتست داره به رعیی ای ای ای دا این بیگه احوالی تثیر به رعی تردانی که هست